دوستان خوشحالیم که در مطالعه کلام خدا باز هم با ما همراه هستیم. به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. زمن مطالعه کلام خدا به کتاب تاریخی رسیدیم. به کتاب پادشاهان و تواریخ که به ما میگن در نتیجه اینکه قوم اسرائیل نخواستن خدا پادشاه اونها بشه برای اونها چه پیش اومد؟ در این کتاب ما عبرتوی وحشتناکی رو در زندگی پادشاهان شریر میبینیم و نیز سرمشقای بزرگی از زندگی انبیای خدا ماننده ایلیا و ایلیشا میبینیم در اول پادشاهان تجربه پادشاهی اسرائیل رو میبینیم در دوم پادشاهان ما جزئیات به رفتن پادشاهی و فیض و صبوری خدا رو میبینیم همونطور که میبینین چیزهای زیادی هست که باید یاد بگیریم. با هم به درسه امروز معلممون گوش میکنیم. امروز هم به بررسی کتاب‌های تاریخی پادشاهان ادامه میدیم. می‌خوام اینجا به چیزی اشاره کنم که بتونید ضمن بررسی کتاب‌های پادشاهان اون رو مشاهده بکنید. اولاً چیزهایی که به کتاب‌های پادشاهان در تاریخ یهود اهمیت بخشیده، ارتباط اونها با پادشاهی خدا هست. حالا این به مفهوم اون پادشاهی خدا که در عهد جدید می خونیم نیست. این پادشاهی قوم یهود هست. این پادشاهیه که وقتی مردم نخواستند خدا پادشاهشون باشه، خدا به اونها داد. اونها میخواستند مثل سایر اقوام پادشاه داشته باشن و یادتونه که اراده مستقیم خدا این نبود. اون اراده مجاز خدا بود. خدا مسئول عواقب وخیمی که فرزندان خدا در نتیجه اعمال شریرانه اون پادشاهان مرتد تجربه کردن نبود. کتاب ظهور و سقوط رایش سوم درباره رشد و سقوط آلمانی ها تحت فرمان هیتلر صحبت میکنه. معمولا ما دوست نداریم چنین کتابهایی رو بخونیم. واقعیت ها وحشتناک هستند اما حقیقت دارند و تاریخ هم ها رو ثبت کرده. وقتی کتاب اول و دوم پادشاهان رو میخونید اونها هم جزء همین دسته از کتاب ها هستند. در این کتاب ها شما درباره ظهور و سقوط پادشاهی قوم بنی اسرائیل می خونید. پادشاهی یهود در زمان حکومت سلیمان به اوج شکوه و جلال خود رسید. مردم پادشاهی مانند دیگر اقوام میخواستند اما خدا حکومت الهی رو میخواست. حکومتی که مفهومش حکومت خدا توسط نبی یا کاهن بود. بنی اسرائیل پادشاهی زمینی میخواستند مثل دیگر پادشاهی های روی زمین اونها به هر چه میخواستند رسیدند. خصوصا در حکومت سلیمان وقتی که پادشاهی به اوج عظمت و شکوهش رسید اونها به هرچی که میخواستند رسیدن. اما اون دوامی نداشت. و درست مثل حکومت هیتلر زود از بین رفت. پادشاهی زمینی یهود دوام نداشت چون که اراده مستقیم خدا نبود. بنابراین در دوم پادشاهان 17-24 شما درباره سقوط قسمت شمالی پادشاهی یهود می خونید. در اول پادشاهان می که چطور این پادشاهی تجزیه شد و در دوم پادشاهان میبینید که قسمت شمالی و جنوبی این پادشاهی از هم فرو پاشید. شما این تصویر وحشتناک رو در دوم پادشاهان 17.22 میبینید و بنی اسرائیل به تمامی گناهانی که یرب آم ورزیده بود سلوک نموده از آنها اجتناب نکردند تا آنکه خداوند اسرائیل را موافق آنچه به واسطه جمیع بندگان خودم بیا گفته بود از حضور خود دور انداخت. پس اسرائیل از زمین خود تا امروز به آشور جلای وطن شدند. این متن مربوط به پادشاهی شماله که اسرائیل خوانده می شد. در دوم پادشاهان 25-21 ما این شرح وحشتناک از سقوط پادشاهی جنوب رو میخونیم. پادشاه بابل ایشان را در ربله در زمین حمات زده به قتل رسانید پس یهودا از ولایت خود به اسیری رفتند. این شرح مربوط به دو طایفه بنیامین و یهودا هست که بر روی هم پادشاهی یهودا خوانده میشدند. وقتی سقوط پادشاهی جنوب رو به دقت می‌خوانید می‌بینید که مغلوب شدن و تبعید پادشاهی جنوب اونقدرها هم که مردم فکر می‌کنند ساده نبوده طایفه بابلی ها یک روزه به اونجا نیومدن که شهر اورشلیم را تصرف کنند و مردم رو به اسیری ببرند شما میخونید که اورشلیم عملاً در طی یک دوره 20 ساله سه بار سقوط کرده. اولین بار وقتی که یهویاقیم پادشاه بود و شلیم سقوط کرد. یهویاقیم شهر را تسلیم پادشاه بابل کرد و به مدت سه سال به او خدمت کرد. اما وقتی یهویاقیم از اشغالگران بابلی اطاعت نکرد، بابلی ها برای دومین بار شهر را تصرف کردند. دومین بار یهویاکین پسر یهویاقیم شهر را تسلیم کرد و او شلیم برای دومین بار سقوط کرد. بسیاری از بنی اسرائیل قتل عام شدند و اونهایی که باقی مانده بودند در قول و زنجیر به اسارت رفتند. وقتی که بابلیا ها بنی اسرائیل رو به بابل بردند، بابلیها ها شاه دست نشانده به نام صدقیا بر یهودا تحمیل کردند که به مدت ده سال بر اورشلیم تحت تسلط بابلیها ها حکومت کرد. اما وقتی صدقیا هم بر علیه بابل استیان کرد، شهر برای سومین بار تظرف شد. وقتی که برای سومین بار بابلی ها شهر را تصرف کردند، تمامی شهر را نابود و آن را با خاک یکسان کردند. قوم یهود این شهرت را پیدا کردند که همیشه علیه اشغالگران تغیان می کنند. وقتی که کتاب های از را و انه رو میخونیم را می, می بینیم که بعضی از بنی اسرائیل از اسارت بابل بازگشتند. اونها با اجازه و حمایت کروش کبیر امپراتور فارس بازگشتند تا معبد شهر و کشورشون را بازسازی کنند. مخالفت‌های زیادی با این بازسازی می‌شد. کسانی که مخالف بنی اسرائیل بودند، نامهای برای امپراتور فارس فرستاده و گفتند: اگر اسناد تاریخی پادشاهی خودت و اسناد تاریخی پادشاه بابل رو بخونی خواهی دید که این قوم به مردمانی سرکش و اسیانگر معروف هستند. وقتی که آن اسناد خوانده شد، جواب آمد که بله، آنها قومی سرکشند. جلو کارشان رو بگیرید و اجازه ندید به بازسازی ادامه بدن. اگر از ماسادا دیدن کنید در مورد شهرت اسجانگری قوم اسرائیل بیشتر خواهید آموخت. وقتی که یهودیان در هفتاد میلادی علیه رومیان قیام کردند، یهودیان ارتش روم را رو به مدت دو سال در ماسادا متوقف کردند. یهودیان اونها را در ماسادا متوقف کردند و به جای اینکه تسلیم بشن، ترجیح دادند خودکشی کنند. اورشلیم بارها در طول تاریخ منهدم شده و در هفتاد میلادی تماما نابود شد. بنابراین شهر اورشلیم فعلی عملا اون اورشلیمی نیست که در ایام عیسی وجود داشت. قوم یهود از دوره جفایی یوبور کردند که در هفتاد میلادی شروع شد و در هولوکاست به اوج خود رسید که اونها را به طور دست جمعی قتل عام کردند. در ایام ما اونها رفتاری برنامه ریزی شده در پیش گرفتند که به طور عمدی متکبر و مغرور باشند. اونها جوانانشون رو طوری بار میارند که گردنکش و متکبر باشند در اسرائیل امروزی هر جوانی وقتی به سالهای آخر نوجوانی میرسه، ارتش اسرائیل ملحق میشه و اونها به ماسادا برده میشن و به عنوان ارتش اسرائیل سوگند یاد میکنند. اون نقطه عملا تبدیل به مکانی مقدس برای قوم یهود در دوره معاصر شده. اسرائیل قرن بیستم در صدد هست که این شهرت رو احیا کنه که قوم اسرائیل جنگجویانی بزرگ و سرکش علیه اشغالگران هستند یادتون باشه معنی اسرائیل یعنی جنگنده اونها این نام را از یعقوب گرفتند یعقوب زمانی که با فرشته خداوند کشتی گرفت خدا نام اسرائیل رو به او بخشید وقتی که خط سیر تاریخ یهود رو دنبال می کنید اولین چیزی که باید در کتاب‌های اول و دوم پادشاهان مشاهده کنید ظهور و سقوط قوم یهود است این کتابها حاوی مطالب خطیری هستند دومین چیزی که باید ملاحظه کنیم خود پادشاهان هستند ما باید توقع داشته باشیم که وقتی کتابی با عنوان پادشاهان می خونیم درباره خود پادشاهان هم بخونیم یادتون باشه که وقتی مطالب تاریخی کتاب مقدس رو می خونید دنبال این دو چیز باشید سرمشخا یا نمونه ها و خشدارها یا عبرت ها وقتی که در این دو کتاب تاریخی زندگی پادشاهان رو مطالعه می کنید اکثرا در اونها با عبرتا مواجه میشید گاهی چند پادشاه در پادشاهی جنوب خوب بودند و بقیه شریر بودند اما پادشاهان شمال در همه دورها شریر بودند و شما میتونید از زندگی همه این پادشاهان عبرت بگیرید مهمترین شخصیت در بین همه پادشاهان سلیمان هست. زندگی سلیمان همونطور که در اول پادشاهان نوشته شده سراسر عبرت هست. سلیمان در ابتدا خوب شروع کرد و سرمشق خوبی برای ما هست. او شاول رو برای ما تدایی می که او هم خوب شروع کرد اما همانند شاول او هم عاقبت خوبی نداشت. شروع سلیمان واقعا العاده است. در باب‌های نخست پادشاهان داوود پدر سلیمان معموریتهای بسیاری به سلیمان داده. وقتی که رهبری رو به پسرش واگذار می‌کرده، خوی انسانی داوود در بستر مرگ ظاهر شده و به پسرش سلیمان گفت که برو و شمعی رو که به من در موقع فرار از اورشلیم دشنام داده بود بگیر. یادتونه که وقتی داوود به اورشلیم بازگشت شمعی رو بخشید، اما وقتی داشت به سلیمان گفت من قولی به شمعی دادم و اون رو به جا آوردم اما تو به او قولی ندادی تو مسئول قول من نیستی تو جوان حکیمی هستی و می دانی که باید چه کنی نزار که موی سفید او بدون خون به گور بره و بعد میخونیم که سلیمان شمعی رو کشت داود همینطور به سلیمان گفت که یوآب رو بگیره چون که یوآب سرداران لشکر داوود یعنی اپنیر و اماسا رو کشته بود یادتونه که داوود نارضایتیش رو خصوصا وقتی ابنیر کشته شد نشون داده بود اما من گمون می کنم بیشترین دلیلی که داوود به سلیمان گفت برو و یوآب رو بگیر به خاطر این بود که یوآب ابشالوم رو کشته بود داوود این رو نمیگه اما من فکر می کنم یکی از دلایل اصلی که داوود به سلیمان فرمان داد که یوآب رو بکشه این بود وقتی که داوود این مسئولیت رو به سلیمان سپرد که سومین پادشاه اسرائیل باشه به نظر می رسید که سلیمان ختمش پدرش رو دنبال خواهد کرد شما میشنوید که سلیمان این کلام آشنا رو اظهار می‌کنه یهو و خدای من تو بنده خود را به جای پدرم داوود پادشاه ساختی و من طفل صغیر هستم که خروج و دخول را نمیدانم و بنده در میان قوم تو که برگزیده ای هستم، قوم عظیمی که کسیرند، به حدی که ایشان را نتوانشه مرد. سلیمان میگه قوم تو مانند ستارگان و ریگ ها کسیر هستند و من کی هستم که پادشاه این قوم عظیم باشم؟ بعد سلیمان در اوایل حکومتش دعای زیبایی میکنه. خدا عمیقا تحت تأثیر دعای سلیمان قرار میگیره. خدا در پاسخ به دعای سلیمان میگه چون که این چیز را خواستی و طول ایام برای خیشتن نطلبیدی و دولت برای خود سؤال ننمودی و جان دشمنانت را نتلبیدی بلکه به جهت خود حکمت خواستی تا انصاف را بفهمی اینک بر حسب کلام تو کردم و اینک دل حکیم و فهمی به تو دادم به طوری که پیش از تو مثل توی نبوده است و بعد از تو کسی مثل تو نخواهد برخواست و نیزان چرا نتلبیدی یعنی هم دولت و هم جلال را به تو عطا فرمودم به حدی که در تمامی روزهایت کسی مثل تو در میان پادشاهان نخواهد بود ما در این باره وقتی که به مزمور 127 و کتاب جامعه سلیمان میرسیم بیشتر خواهیم شنید سلیمان ثروتمندترین و حکیمترین مردی بود که دنیا به خودش دیده او تبدیل به مردی شد که زندگی داشت پر از تجربیاتی که تا کنین کسی چنین تجربیاتی نداشته علارغم همه اینها سلیمان در بین پادشاهان تبدیل به مردی شد که بزرگترین شکست خورده محسوب شد یادتون هست که قبلا هم گفتم باز هم تاکید میکنم که تمامی اون فجایع و تجزیه پادشاهی که در دوم پادشاهان خوندید و تمامی فروپاشی پادشاهی به اسارت رفتن پادشاهی و تمامی اون مصیبت ها که بر سر پادشاهی آمد به خاطر گناه داوود نبود داوود به گناه خود اعتراف کرد و خدا گناه داوود رو بخشید داوود از گناهش توبه کرد و به مدت 24 سال بعد از توبه پادشاهی خوب بود. تمامی این مصیبت ها که در این کتاب ها می خونیم به خاطر گناه سلیمان و شکست سلیمان بود. وقتی که پادشاهی اسرائیل به اوج جلال و شکوهش رسید، سلیمان از خدا برگشت. اساساً این زنان سلیمان بودند که او را از خدا برگرداندند. او 700 زن و 300 زن صیغه‌ای داشت. تپه‌ای که سلیمان همه زنانش را در اون نگه می‌داشت به تپه رسوایی معروف شد. سلیمان آشکارا مرتد شد. بسیاری از زنهای سلیمان خدایان غیر رو می پرستیدن و سلیمان تحت تاثیر زنان خود به اون خدایان بیگانه باور کرد. این میتونست گناهی باشه که منجر به اون فاجعه بزرگ شد. به این دلیل من میگم که علی تمام ثروت و حکمتی که سلیمان داشت، او یکی از بزرگترین درماندگان بود. به اعتقاد من سلیمان یک بازگشت روحانی داشته. به نظر نمی رسید شعول بازگشت روحانی داشته باشه. اما به عقیده من سلیمان داشت. من برای این سه دلیل دارم. اولین دلیل مزمور 127 هست. مزمور 127 تنها مزموری هست که سلیمان نوشته. در این مزمور سلیمان به ما چیزی میگه که من فکر میکنم مخصوصاً برای مردم نوشته شده و اون بارد از اینه. ممکنه زحمتها هدر برند. ممکنه بناها از بین برند امکان داره که همه چیز هدر بره سلیمان معمار بزرگی بود سلیمان نه تنها معبد رو بنا کرد بلکه شهرها و پارکهایی هم بنا کرد او ناوگانی از کشتیهایی بنا کرد که فقط بره و به یک ملکه خوشامد بگه سلیمان معماری خارق بود وقتی سلیمان این مزمور کوتاه رو نوشت اینطور گفت اگر خداوند خانه را بنا نکند زحمت بیهوده میکشند اگر خداوند شهر را نگاهبانی نکند، نگهبانان بیهوده به پاسداری میستن. سلیمان میگه که این امکان هست که ما چیزهای نادرست بنا کنیم. بعد سلیمان درباره اهمیت زندگی فرزندان با ما صحبت میکنه. من فکر میکنم او به همه ما مردان درسی از اولویت ها میده. سلیمان در مزمور 127 میگه مهمترین چیزی که شما میتونید بنا کنید زندگی یک بچه هست. فرزندان سلیمان خوب تربیت نشدند. سلیمان پسری داشت که بسیار ابله بود. من فکر کنم سلیمان باید خیلی از این مطلب پشیمون بوده باشه که در روی زمین هر چیزی رو ساخت جز زندگی پسرش. مزمور 127 مانند سرود پشیمانیه که خود سلیمان نوشته. کتاب جامعه هم مانند سرود پشیمانی سلیمانه. کتاب جامعه دومین دلیلیه که من فکر کنم سلیمان یک بازگشت روحانی داشته. کتاب جامعه موعظهای بزرگ است. دوازده باب کتاب جامعه یک خطابه بزرگ است که سلیمان برای جوانان اسرائیل موعظه کرده. به عنوان یک مرد مسن، سلیمان به عناوین مختلف به آنها میگفت: من اشتباه بزرگی کردم و شما اون اشتباه را تکرار نکنید. شما از های من و از تجربیات من درس بگیرید. تجربیات تنها معلم ما نیستند، اما معلمی قانع کننده هستند. شما لزومی نداره که چیزی رو که من تجربه کردم تجربه کنید تا آنچه چرا من آموختم بیاموزید سومین دلیل که من ایمان دارم که سلیمان به خدا بازگشت کرده اینه که در این دوره از تاریخ که در کتاب تواریخ تکرار شده نه تنها گناه داوود بلکه گناه سلیمان هم نادیده گرفته شده به نظر من معنیش اینه که سلیمان باید به گناهش نزد خدا اعتراف و از گناهش توبه کرده باشه اما سلیمان در صفحات کتاب مقدس همچنان به عنوان یکی از بزرگترین ابراتها باقی مان. وقتی که کتاب‌های اول و دوم پادشاهان رو میخونید، سلیمان اولین پادشاهی که شما می‌خواید روش تمرکز کنید. زندگی سلیمان اساساً یک عبرت هست. اگرچه در ابتدا زندگی سلیمان، اگرچه در ابتدا بیشتر هست، اما با این حال می‌بینیم که زندگی او سراسر یک عبرت هست. زندگی سلیمان اساساً یک عبرت هست. اگرچه در ابتدا زندگی سلیمان بیشتر سرمشق بوده شما سرمشخ های باشکوه و بینظیری رو در زندگی انبیا خواهید دید و زندگی بیشتر پادشاهان عبرتهایی هستند که باید به اونها توجه کنید وقتی خدا میخواد که حقیقت بزرگ یا نظری رو با ما در میون بذاره او دوست داره اون نظریه یا حقیقت رو در زندگی یک شخص نشون بده وقتی خدا میخواد به قومش هشدار هم بده دوست داره که اون رو در زندگی یک شخص نشون بده به بسته های و عبرت های خداوند در این کتاب های تاریخی عهد قدیم توجه بکنید. هزقیه پادشاه خوبی بود که کارهای خوبی هم انجام داد. کارهایی که او انجام داد و او را به عنوان سرمشقی دست کم در بعضی موارد نشون داد عبارت بودند از برچیدن پرستشگاه های بالای بلندی ها و خراب کردن مذبح بوت او بوت های مارهای برونزی رو که مردم اونها رو شکست. او به یهوه خدای اسرائیل تمام و کمال اعتماد کرد. در واقع هیچ کدام از پادشاهان پیش از حزقیا یا پس از او چونین به خدا نزدیک نبودند، چون که او در هر چیزی به دقت خدا را پیروی میکرد و از تمامی فرامینی که خدا به موسی داده بود اطاعت میکرد. پس خدا با او بود و او را در هر کاری موفق میکرد. بسیاری از بخشهای زندگی حزقیا برای ما سرمشق است. اما بعضی عبرت ها هم در زندگی او هست. وقتی حزقییا بیمار بود، خدا توسط عیای نبی با او صحبت کرد. حزقییا گفت: خداوند چنین میگوید: تدارک خانه خود را ببین، زیرا که میمیری و زنده نخواهی ماند. آنگاه او روی خود را به سوی دیوار برگردانید و نزد خداوند دعای زیبایی نمود. دعاهای زیبای بسیاری در این کتاب ها وجود داره، مخصوصا دعای سلیمان و هزقیا. حزقیا دعا کرد که خدا زندگی او را حفظ کند. حزقیا گریه کرد. بعد این پیام زیبا رو میشنویم که خدا توسط اشعای نبی به حزقیا میفرسته. خداوند به اشعیا گفت: برگرد و به پیشوای قوم من حزقیا بگو خدای پدرت داوود چنین میگوید: دعای تو را شنیدم و اشک‌های تو را دیدم. اینک تو را شفا خواهم داد و در روز سوم به خانه خداوند داخل خواهی شد. و من بر روزهای تو پانزده سال خواهم افسود. خدا به او گفت خدا اشک ها رو میبینه. من فکر میکنم که این بسیار اهمیت داره. خدا چون اشک های او رو دید پانزده سال به عمر او افسود. این سرمشق زیبایی برای ما هست. این مرد وقتی شنید که خواهد مرد اگر چه سخنان خداوند رو از زبان نبی شنیده بود با این حال هنوز از خدا درخواست میکرد. اگر کسی به شما بگه که شما بیماری بدخی می دارید و خواهید مرد شما حق دارید دعا کنید که پدر اگر ممکنه این جام از من درگذرد من نمیخواهم بمیرم به نظر من همه ما حق داریم که اینطور دعا کنیم و درخواست شفا کنیم به هر حال ما باید اون دعا رو مانند عیسی به پایان ببریم که گفت این جام از من درگذرد اما نه به اراده من بلکه اراده تو انجام شود گاهی بیماری ها شاید به این دلیل باشند که ما باید بمیریم وقتی ایلازر مریض بود عیسی گفت منظور از این بیماری مرگ نیست بلکه باید خدا جلال بیابد اما گاهی منظور از بیماری این هست که ما باید بمیریم اگر مرتهای سبز که هرگز خشک نمیشند و آبهای آرام که هرگز طوفانی نمیشند و کاسه لبریزی که هرگز خالی نمیشه در بعد دیگه ای از زندگی ما هست بالاخره خدا باید ما را به بعد بعدی ببره که این چیزها رو به ما بده هیچ کدوم از ما تصمیم نمیگیریم که بریم بنابراین تقریبا همه ما به خاطر یک بیماری به بالا میریم گاهی منظور از بیماری ها این هست اما وقتی به شما گفته میشه که بیماری خطرناکی دارید شما حق دارید که برای شفا دعا کنید هزقی ها این دعا رو کرد و خدا پانزده سال دیگر به عمر و او افسود اگرچه حزقییا در رابطه با اون معجزه تبدیل به عبرت برای ما شد روزی چند بابلی حزقی رو ملاقات کردند و او با غرور تمام اموال خزانه اش رو به اونها نشون داد. زرها ها، ها و همه خزانه اش رو. اشعیا نبی به حزقیا گفت به اونها چی نشون دادی؟ و وقتی حزقیا به او جواب داد، اشعیا در جواب گفت که چه اشتباه بزرگی کرده ای؟ اونها میرند و برمیگردند و بر تو غلبه خواهند کرد. اشعیا داشت تصرف اورشلیم رو پیشگویی میکرد و او گفت بعضی از پسرانت که از تو پدیدایند در قصر پادشاه بابل خاجه خواهند شد و به بابل به اسیری خواهند رفت حزقیا پرسید این اتفاق کی خواهد افتاد و اشعیا در جواب گفت که در ایام تو سلامتی و امان خواهد بود و بعد از تو این اتفاق خواهد افتاد و حزقیا گفت کلام خداوند که گفتی نیکوست چون که در زمان من سلامتی خواهد بود پانزده سال من خراب نخواهد شد پانزده سال من خوب خواهد بود و بعد از اون هم من اهمیت نمیدم که چه اتفاقی میفته قرار بود پسران حزقیا خاجه بشند و به اسارت برده بشند اما ظاهرا حزقیا به این اهمیتی نمیداد حزقیا یقینا پدر نمونه ای نبود حزقیا فقط به عمر خودش اهمیت میداد و نسبت به آینده پسرانش بیاعتنا بود چیزهای دیگری غیر از ظهور و سقوط پادشاهی در این کتابهای پادشاهی هستند که باید اونها رو ملاحظه کنید. ملاحظه کنید که زندگی کدام پادشاه سرمشق و کدام عبرت بوده؟ همونطور که در جلسه اول پادشاهان پیشنهاد کردیم سه چیز هست که توی اون کتاب باید بهشون توجه کنیم. انبیا رو ملاحظه کنید. انبیا سرمشق هایی در کتاب های پادشاهان هستند. انبیا برخی از زیباترین نمونه و سرمشق کتاب مقدس هستند. همونطور که در جلسه اول اشاره کردم، بعضی از انبیا معروف نبودند، از بعضی از اونها حتی نام برده نشده. اگرچه انبیای ای چون ایلیا در اول پادشاهان و الیشه در دوم پادشاهان هم وجود داشتند. من داستان الیشه رو در دوم پادشاهان دوست دارم. وقتی سردار ارامیها ها برای شفا نزد الیشه آمد، در این مرحله ارامیها ها آماده می شدند که بر پادشاهی شمال غلبه کنند. قبلا نبرد های کوچکی در جریان بود ارامی ها ارتش قدرتمندی داشتند، اما سردار اونها نعمان مبتلا به برس بود. یک دختر یهودی در حضور زن نعمان خدمت میکرد و احتمالاً اسیر بود. او درباره باره نبی در اسرائیل با نعمان صحبت کرد و گفت که او میتونه تونه برس رو شفا بده. پس نعمان با عرابه خود و چند تن از سربازانش به کلبه کوچک علیشه رفت. حالا نعمان نزد خودش فکر میکرد کرد که علیشه کارهای خاصی برای شفای او انجام خواهد داد نومان فکر میکرد که الیشه باید کارهای مهیجی بکنه فکر میکرد که الیشه به او خیلی احترام خواهد کرد چون که نومان سردار لشکر ارامی ها بود الیشه هیچ کدام از این کارهایی رو که نومان انتظار داشت انجام نداد او حتی از کلبهش برای خوش به او بیرون نیمد الیشه خادمی نزد نومان فرستاد و خادمش به او گفت: الیشا میگوید، برو و در اردن هفت مرتبه شستشو نما و گوشتت به تو برگشته طاهر خواهی شد کتاب مقدس میگه اما نومان غضبناک شده رفت و گفت اینک گفتم البته نزد من بیرون آمده خواهد ایستاد و اسم خدای خود یهوه را خانده و دست خود را بر جای برس حرکت داده ابرس را شفا خواهد داد آیا ابانه و فرفر نهرهای دمشق از جمیع آبهای اسرائیل بهتر نیست آیا در آنها شستشو نکنم تا تاهر شوم پس برگشته با خشم رفت همینطور که در راه می خادمینش به او گفتند: ای پدر ما اگر نبی کار بزرگی خواسته بود تو انجام نمی دادی؟ پس حالا که کار به این سادگی از تو خواسته بیا و شستشو کن و تاهر شو.» پس او فرود آمده هفت بار همونطور که الیشا گفته بود در اردن قوته خورد و گوشت تن او مانند گوشت تن طفل کوچک برگشته و طاهر شد. به لحاظ کاربوری داستان شفای نومان تمثیلی زیبا از داستان نجات در انجیل هست وقتی بسیاری از مردم که اشتیاق روحانی دارند و به حضور مسیح میان اونها از قبل تصورات و انتظاراتی در مورد نحوه نجاتشون دارند. ها توقع دارند نجات مانند یک اکسیر الهیاتی باشه. بعضی از عقلانیون بر این باورند که چون نجات چیز پیچیده ای نیست نمیتونه ارزشمند هم باشه. این اغلب در مورد افرادی با تحصیلات دانشگاهی صدق میکنه. اونها آسان بودن کلام خدا رو میشنوند که پولوس رسول هم اون رو اینطور بیان کرده بود. زیرا از آنجا که بنابر حکمت خدا دنیا نتوانست با حکمت خودش خدا را بشناسد، خدا چنان مسلحت دید که از راه موعظه جاهلانه انجیل کسانی را که ایمان می نجات بخشد. اونها اون رو انقدر ساده می بینند که نمیتونن به اون باور کنند. انجیل غالبا برای اقلانیون بسیار ساده به نظر میرسه به نظر میرسه که اونها برای باور کردن به اون نجات باید افرادی دارای عطیه باشند اونها غالبا فکر می کنند که نجات چیزیه که فقط افراد تحصیل کرده باید بتونن از اون بهره مند بشن اما دریافت نجات بسیار ساده تر از اینه. چون که نجات در قالب تعصبات و پیش داوری های اونها قرار نمی‌گیره. بسیاری از روشنفکران و اقلانیون نجات را از دست می دن موجد نجات به همین اندازه ساده است که الیشع به نومان گفت برو و هفت بار در رود اردن گلالود قوطه‌ور شو. شما لازم نیست که نجات رو درک کنید. نجات لازم نیست که چیز مستدلی باشه. نجات لازم نیست که چیز منطقی باشه. لازم نیست که لزوماً اون چیزی باشه که شما فکر می‌کنید باید باشه. برو و هفت بار در اردن قوتور شو. فقط باور کن و به چیزی که میشنوی عمل کن چون که جهالت مععزه مجده نجات میتونه جان شما رو نجات بده. میتونه راه حل شما بشه و باعث نجات شما بشه. این کار داستان شفای نعمان در دوم پادشاهان باب پنج هست. باز هم برمیگردیم به این انبیا و میخوایم دوباره به مطالبی در مورد اونها نگاهی بکنیم. این نه تنها مردانی بودند که کلام خدا رو بیان می و مردانی بودند که خدا به واسطه آنها صحبت می کرد. نه تنها مردانی بودند که میستدن و کلام خدا را برای مردم موعظه و باز می کردند بلکه مردانی بودند که خدا اونها رو وقتی مشکلی وجود داشت بلند می کرد. توی کتاب مقدس گاهی می بینید که وقتی مشکلی نیست نبی هم نیست اما به محض اینکه که مشکلی پیش میاد می بینید که یک نبی ظاهر میشه. می میبینید که هرگاه که کار خدا به مانعی برخورد میکنه، خدا یک نبی رو بلند میکنه. یکی از نقشهای نبی خدا اینه که معزه اش رو بر اون مشکل و مانع متمرکز کنه. تا وقتی که اون مشکل و مانع برطرف بشه و کار خدا باز هم مسیر عادیش رو طی کنه. و بعد می میبینید که وقتی کار خدا به مسیر عادی خودش برگشت و به مشکل دیگه ای برخورد کرد، خدا نبی دیگه ای رو بر میانگیزه. برطرف کردن موانعی که مانع کار خدا میشه نقش اصلی و وظیفه اساسی این انبیا هست. در عهد جدید کار خدا کلیسا هست. خدا کلیسای خودش رو بنا میکنه. وقتی کلیسا با مانعی مواجه میشه خدا رسولی رو بر میانگیزه که رساله ای بنویسه. در عهد قدیم خدا انبیا رو بر میانگیخت که کتابهای نبوتی عهد قدیم رو بنویسن او نبی به خاطر اون مشکل و مانع ناله و فریاد می کرد تا زمانی که اون مانع رفت می شد در عهد جدید خدا رسولی رو برمیانگیخت انگیخت که رساله ای بنویسه که به کلیساها بگه که چطور می تونن ای رو که بر سر راه کلیسا هست بردارن تا کار خدا از طریق کلیسا دوباره پیش بره خلاصه وقتی کتابهای اول و دوم پادشاهان رو میخونید ظهور و سقوط پادشاهی رو ملاحظه کنید. وقتی که درباره این پادشاهیها یاد می‌گیریم به طور کاربردی می‌فهمیم که خدا امروز میخواد در کلیسه هاش به عنوان قومی مقدس چیکار بکنه بعد خود پادشاهان رو ملاحظه کنید زندگی اکثر اونها برای ما عبرتی هست و معدودی از اونها سرمشق‌هایی برای ما هستند بعد باز هم در این دو کتاب انبیا رو ملاحظه کنید انبیا سرمشق‌های زیبایی هستند انبیا کسانی هستند که اگر بیاییم و زندگی اونها رو ملاحظه کنیم و به پیام هایی که در این دو کتاب ثبت شده گوش کنیم، خدا با ما صحبت خواهد کرد. به خبر خوش نجات گوش کنید مثل پیغامی که به نعمان داده شد. شاید به نظر منطقی نرسه شاید به نظر عاقلانه نباشه. شاید خیلی ساده به نظر بیاد. اما مثل نعمان باور کنید و از اون اطاعت کنید و برای برث روحانیتون شفا بگیرید. عیسی میگه مرا پیروی کن و به من اعتماد کن. آیا تا امروز این کار رو کردید؟ اگر نکردید، امروز وقتشه که این کار را بکنید. دوستان، حکمت های عملی زیادی در کتاب های تاریخی عهد قدیم وجود دارن. اما یادتون باشه که مهمترین چیز به کار گرفتن اون حکمت در زندگی های روز آیا شما عبرت ها و سرمشق های این کتاب ها رو پذیرفتین؟ زندگی شما یک سرمشق یا یک عبرت؟ آیا شما به خدا اعتماد دارین یا به خودتون؟ دعای ما اینه که این درس ها شما رو به ایمان عمیقتری در عیسی مسیح خداوندمون رهنمون بشه. متشکرم که با ما همراه بودین. لطفا ترتیبه بدین که در درس‌های بعدی هم با ما همراه باشین و از دوستان و اقوامتون دعوت کنید که در ادامه راه با ما همراه باشن.